الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على سیدنا رسول الله و آله الطیبین و طاهرین المعصومین و لحظ دائمت و علی دائم مجمعین اللهم افرنا جمعی المشتگلین و برحمتك و رحم الراحمین از هم فلمتون که راجع به روانیاتی بودی در حجیت خبر سقه و تعبود شرعی به حجیت خبر سقه حساب من جمله مرحوم های برو جدی این بحثشون نقیق کرده. از شد که مثل مرحوم صاحب وسائع این بحث در کتاب وسائع آورده و توضیح داده شد که بعدها هم آیون اخباری های دیگه هم که من با رو سعی کردم از اخبار در دیارن در سفاقی که در این محطور هست این مطلب رو عبر در هم خب مردم های بلو جردی قدس الله و سره ایشون اون وقت دیروز تا دیروز تشهار تا از این ربارتی که سوش لاته سره بود خونده شد حال اینجا معلوم شد که روایاتی که تا اینجا خوندیم بعضیاش ناظره به وکیل یا به اصطلاح امروز ما نماینده امامه مثل که این نهو سققی به نهر اضافه این مولوان نماینده به وکیل امامه به بدا اشبال قول وکیل حجتی و رفتی هم به حجت خبر سقه نده مخواد مفیده ام باشه یا نداشه ارز که یک روایت هم بیروز خوندیم داری چه بیگونم سر نظرم اون روز شما نهبوده چون دیروز نگوستیم چون داره الگین نقابه داره کنم سر رو الگین نه چون عرف و به انا نقابه اولا سر به این معنی که نمیاد در روایات به معنای حد میاد سرنا و نحمله و ای این سر نیست که یرای رفت به رزنات ایمان بابر ای چیز چیزی میرد این نحمله و ای آقا علیه نیست نه نه نیستی الان برز بحث میشه یکی هم دیروز دوارت عفیونس ابن عبدالرحمن سرقتم که از این مرد مختلف معرو شده تو یکی از نرگه ها که بله صحت صحبت همین مطلا سهیره در اونجا داره سکتا و از خلیم به لحاظ شواهد قطعی خارجی حالا غیر از اینکه شواهد نشون می میده که این مرس رو که یک نفر قومی نهبو کرده و وکیل حضرت همونده مرحوم عبدالعز مرتضی، متاسفانه بیرون خود قومی ها قبول نمیشه چون قومی ها با خود یونس خوب نبودن با اینکه این که این رو روشون نعقل کرده معزال قومی ها با یونس مرد خوب نبودن باقتن از, از تمام این مسائل از تلید سقه در اونجا به معنای شخصی که به لحاظ اعوائه چون مسائل اعوائی مثل تجسیم و اینجور چیزها یا بعضی از جبر و بعضی از اصحاب ما داده شده یا حتی بعضی از اصحاب ما مسئله قبول می, می که مثلا خدا همه متعال در روزه قیامت دیده میشه مثلا رویت معروف که اختلاع در روزه می به خاطر روایات و ظواهر برزه از آیات ما داشتیم از علمان ما که مثلا به رویت بودن این سه قطعا بعدم در اصول به لحاظ قیاز و خبر واحد و فرح خبر و در فقر به لحاظ اتهام به این که عمل به قیاس کردن و این روایت ثابت نیست و این ر یونس بن عبدالرحمن به مجموعه امور مورد اتهام بود این ثقته یعنی چون فقیه صحیح و درست فقهیشان و عقاید ایشان, ایشان سلیم و قابل اعتماد که چهار های کلی مذهب آکدامه او ما احتاج جریه من معالم دینی چهار های کلی مذهب رو مشعش کرد مثل صحیح که قابل اعتماد این ربطی به وقت ساخت ندار پس این دو تا معنای سقه تا اینجا که این دو تا معنا ربطی به وقت خبر سره سقه اسم سوام از روایات ما روایات نسبتاً زیادیه و سه ها و غیر سه ها داره به نظر معنام بروجه دیگه هم فقط اشاره گذارن کردن و اون روایات که مثلا در ابواب مختلفی وارد شده توی باب اده و باب طلاق هست و باب میراس هست مثلا اخوارهو اداغالهو سه قطن اونطوری تحبیل داره توش من یه وقتی یکی سینا رو توان جمع کرده خیلی وقتی خودم جمع نکردم. آن جمع بکنم خیلی خوبه و دوزه دیگه هم دینه تا 25 روایته شدام شد سی تا روایت روایت محتنابه زیاده تا تو ابواب متفرق قرنه مثلا بحث سفر سنده آمد و ایشون مورد تو کرده اینطوری توی ایده از روایته این خیلی خوب الان که یه کامپیوترم هم هست هم کردن را اشراحه مجموعه روایات هست که توی سره الهات و رسقه و اضافه ال ثقه اینجوری داره و از قال السقه مثلا اینجوری شده این روایات که متفرق در ابواب متفرقه این به درز حجج خبر سر نمیخوره این چه بحث نذاره بلکه این تصادفا هر هم تو موضوعات خارجیه مثلا تو احکام نیست تو بحث احکام که الان محل کلام نیست و برای اصحاب اینه که در اون موارد روایات به عنوان موردی عمل بکنن البته همون روایات موضوع خودی در باب ادعاء در باب طلاق در باب میراس تنها پس این سه فائده شده از روایاتی که ما داریم پیش لفظ سغه است یک طایفهش مربوط به نماینده و رکیله که قبولیشان حجته و غفتی به حجت خبر سقه نداره یک طایفه هم که یکیه هم روایت یونس مرد و رحمه که و قابل اعتماده این سه عبارت مرحوم کشید در کتاب کشید اجمع اطلع اصابه على تصفیح مایسته و آنها اولا این تصفیح یعنی این پتواهی که دادن درسته اگر ثابت باشه که این فتوا مال یونس باشه فتواش درسته درست من اطقاق قواهد یعنی خود جد نه معنای مطابقت بابا. با بلا بله اما میدونم بر ازاس اما اینی که الان هست مثلا فرض کنین این دوایت در این باق این دوایت قبول کن نه اون باید. و این دوایت اینجور معنا کن چون عنوان این کتاب خود کشی باید تصمیت الفقه ها نه تصمیت, تصمیت الفقه ها تصمیت من ها این پس این روایت هم روشن نشد بله اون حدیث توقیه مبارک و امرحوادس الواقع فرجوفی ها الاروبات احادیس ها بنابرای این, مراد این که مراد روات روبات باشه چون بحثش این شاید یه دیگه توضیح بیدی که مراد ارزوبات در اینجا ها حالا اگر مراد رواست باشه ما باید این طور بگیم که امام فرموندن اگر مشکلاتی در جامعه شما پیش آمد یعنی مسائلی رسول مورد سؤالتون واقع شد و بلد نبودین لازم نیست به من بنویسیم به همین کتب روایات برگردین حکمش از اونها استخراج بکنیم این... اینجور این بکنیم عمل حمادس عمل فرج اوفی های برواقع احادی اصطناع بله این هم به درد ما نحنفی میخوره این روایت به این معنا این قسمت روایت از آی بولوژی ذکر نکرم این به درد ما نحنفی باید این را کنیم چون اینا گفتن فروفیه ها در خود حادث مراجعه کنید نه در حکم حادثه اگر بخواییم اون معنا بکنیم مراد حکم حادثه هست اما ظاهر شدید که ارجاع هم در خود حادثه هست شواهید احامه شده که مر ولایت اون شخصی که در اینجا مراد تغییر باشه و به هر حال اگر این روایت ما قبول بکنیم که ایمه علیه مسلمان مهدیس آنگاه علیه ارشا دادن به روایت احادیث رو به اون معنا معناه شد این هم از جیت خبر سقه مطلقا در نمیاد از این روایت جیت خبر سقه مطلقا در نمیاد و جیهت کتبی که پیش اصحاب ما بوده روات احادیسان اصلا کتاب حسن محبوب کتاب حسین سعید فرسون بار مثال یا ها کتاب هایی که تا زمان قیبت تا سال های دیویست هفته و هشتاد این توقیه اون بار شده حدوده دیویست هفته و هشتاد کتاب که تا اون وحب نوشته شده اثبات نمیشه که خبر سبه به ما هو خبر سبه خود جد و توضیح ه ادعای از اخباری ها شد مشروع اخباری هم مشهور شد نظر شده اینه که روایاتی که در کتب مشروع اصحاب هست این ها حجت این اونه. نتیجه اونه نتیجهش خود جهد خدرسقه نیست رواقه احادی سنا برمیگرده به حجیه در خصوص روایاتی که در کتب مشهور هست و به بین اصحاب بوده سال و سال هست که ممنوع تأکید میکنه که مضمون شبیه و حداکثر خود جهت خبر ثقه در نمیاد این رو مجموعه سه تا روایتی که سه طایفه از روایات که در لحظه سر هست پس یک تا بلو سلسله روایات حدی این شده دیده سلام. حالا آن کتابو کسی نیستی توی شرایطی نوستن فرش آنها زمین توی شرایطی محمد استانو هست هستی سلام. توش هست همه جور هست سعی. مجدولم کی؟ ماشین از لومیان زن که می‌شود. زن نبین به خبر سلام مراجعه جمع که پس نداره که. هست تعبود اونه. و که اجتماعی می‌زنم. زن اکثرا توی نداره. این راجع به این رسمه پس بنابرای این تا اینجا سه طایفه داریم که یک تایفش به درد مانحنفی میخوره که ایشون رو نیوازه که من اشاره کرد. زیادم هست عدد این طایفه زیاده و موردش هم همون خبر سقه است این هم مسلم. موردش خبر سقه هست ولیکن مشکلش نشون تو عبواب مختلف این احتمال هست که در همون موارد خودش به نحو تحبت باشه بخان تعدی بکنیم به مطلق موارد که توش خبر سره هست و امام پس ازشون در یک کسی از خبر از وفات شوهر بده اگر سره باشه امام تعف باشه توی به از خبر سره مطرحه <تصفيق> و لزوم ایشون اشاره کرد که اتهابات زیاد در توش خبر سره هست اما اینا تماما در موضوعات خارجی و این احتمال هست که مربوط به هم مقام خودش باشه از اون تعدی نه. خوشحال که اخوات یه وقتی که در یه معلوم نیست. این روایتی که هست که مال نقل فرسا توش حالا من نمیدونم شاید شما نظرتون چون تو روایت عمر بنه هنگل هم رجولین من اصحابنام نامه همون منازعتون فدین او میراز اونجا گفتن که منازع دردین و میراز لازم نیست همیشه به شبه موضوعی باشه ممکنه شبه حکمی هم باشه ولذا از اون دردونست که مثلا قاضی باید مخشهر باشه به قاضی برگردن با اون باشه بله، اینجا درست. اما تو این روایتی که من میگم نه این مطلب نیست. یعنی شبهه در نیست که امام صادق هم در روایتی نه کرده. میگه اول خبره که شوهر مرده. امام میگه سره این خبرده خیلی خوب به اگه سندی خبر دستریه خب رسالت جدا که شو ها، اگه غیر سره بود نه. یعنی میرا طلوع فجر، شک کرده از فجر شده یا نشده. امام میگه اگه سنده گفت، قضا خردی روز درست. اینا موردیه. اینا به درد منحنفی در مسئله بلاغه در لغت قرار نمی گیره. یعنی از اوله ولی واقعا همهش موضوعات خارجی که احکام نیستن این یک مشکل و موضوعات خارجی هم بناشون اینه که خبر ثقه این اصل حجت نیست. باید بیینه باشه. این که مشکل اساسیتون تونه رو بگم. اون و هم لبرسته ازباد میشه که چون مواردش که کل فکر نیست کل نهایت الان ماهوالی مثلا ده مورد فکر مثلا باب سهم هست و طلاق هست و به اده هست اصلا معین از ازباد فکر که باب وکالت هست کتاب وکالت هست. هست الان حضور زمین این لحظه هست جمع جمله به هر حال این که در موارد معین عیمه علیه مستان در تشریف این موضوع خارجی ارجاء به خبر سره این ادعیش اسفاده در کل فرمو قبولتون خبر سره این در نمیاد که در این که به شوتش باشه میونه یک روایت واحده اون هم سعیه هست از این سعه علایی هم ادعای رو اون روایت بیشتر ما ناوردادم به خلاف مرحوم ناینی که در اصل دیگه نا ما داده ادعی بیشتر رو این روایت و رو اون روایت صحیح که در کافی هست و مفصل قومي شديدين به لحاظ سندي و تاريخي و خیلی از صحیح است این روایتی است که امام حادی راجع به عثمان بن سعید عمری قال له العمری سختی فما ادى اليك اني فاني يؤذيك و ما قال لك اني فاني هو فسمع له و اتعه من نسخه کافی تو ذهنم میزنید نسخه ای که شده. اطع ازمیر نداره فسمع معله و اطع ف انها سقت المعمون این یکی باز به با همین سند درمو میکنه از امام اسکری و قال الامری و ابنهو سقتان فما عدیا عد عنی فعنی یا عدیام ما قالا لکه فعنی اغولا فسمع لهم و اطعه انه هم سقطان المعمونان اینجا تنصب شده به تعلیل به انه سقط و معمون که این تعلیل درضا میکنه که هر کسی که سره باشه و معمون باشه حرفش قبول باشه تعبد این مال کلام اینه که این واژه صفات حالا سقط روایت در باب سغه یکی در باب نماینده یکی در واقع صحت اشتهاد و فقاها و یکی هم در بجت خبر سره در موضوعات خارجی کرد این کدوم یکی از ایناست به نهو سره طور کلامی رو که از امام هادی نرکل راجع به امری پدر عثمان بن سعید خب عثمان بن سعید امام فراجع با عثمان بن سعید پرموده عثمان بن سعید نائب حضرت نموانده حضرت شما میره که از امام عزقه کرده هم روزی به پدر هم پسره چون پسر هم نائب حضرته نائب حضرت حاضی نبوده کچیک بوده همه نائب حضرت عزقریست هم پدر وکیل حضرت عزقریست هم پسر وکیل حضرت عزقریست و بعد هم هر دو هر دوشون وکیل مقیه الله هم به ترتیب سن اول پدر و بعد هم پسر از خود کلام نحوه صدور کلام مال باب نیابت و وکالت و نماینده حضرته تقرد فرمودیم این کلامی که صادر شده یعنی اگر مراد وساقت محمد عثمان بود وساقت زمان امام هادی هم بود خب سره بود که پرمون اما زمان امام هادی نماینده نبود وکیل نبود رضا از امام هادی و تفاوتشون هم خیلی زیاد نید چون امامه 5 پنج سال و شیش ماه و این مدت امامه ایشونه دقیق میکنه اما همین پسر محمد ابن عثمان زمان امامه ازکری نائب و نمائنده هست ولیکن زمان امام حاضی نبوده پدرش میده. این راجع به این قسمان یک مطلب راجع به اینه که شواهد صدوری به بحث نیابت و نمایندگی میکنه و مثلا ثقتی البته بیا ثقتی و ثقاتنا به نحو اضافه داشت که همین مثل کلام امام حسین رازی به مصعب نقیل و ثقتی به نحو بیتی مثلا ثقه وقتی به نحو اضافه میشه مراد نماینده است من نماینده است ثقاتنا از همین طریقه مشکل در اینجا اینه که می ذاره که نحو ثقت المأمون نه به نحو ثقتی که انه ثقه المع. به نحوه اضافه نه ورجه امام علاوه الله سلام علیه این راجع به این قسمن از یک طرف دیگه امام فرمات, فرمات هست حس معله و اتع یا اتع اوما در دومی قسم الها اون چیزی که ما در یعنی این استدلال میکنه که این روایت مربوط و مقام نمایندگی و وکالت باشه پس ماله و اطعه هما و اینا هر دو ظاهرش حکم تکلیفی هستند که و بحث و جید حکم وضعیه و این رو ما توضیح دادیم کدارن و نقارن و تکرارن که در روایات خیلی از احکام وضعی به لسان حکم تکلیفی آمده این متعارف بوده در فرهنگ روایات متعارف مثلا فعلالعوام انیغلدو این انیغلدو ولو ظاهرش جوازه اباهه تقلیله لیکن مراد جدی هجیت فتوای فقیه. اون به اصطلاح جنبه ویسا خوبشون اینجا فرس معله و عطه داره که به معنای هجیت باشه که این نقطه هست که در باب هجیت خبر سقه مثلا با مثال مرمون نائمی تطمیم کشف می دونن. چون تطمیم کشفه طبیعت تصمیم کش باید مثلا عباراتی باشی که کلامی ایشان یقینیه ولیزا ناینه هم به همین روادتی همه سکمی کستدش این بود لا عذر لعهد من موالینا فشتی فیما یادیه اناس غاخنا میفهمدن لسان دلیل نفیه تشتیقه یعنی شک رو برداشتن وقتی شک رو برداشتن تصمیم علم این شک رو برداشتن میشه تصمیمه دقیق کردیم اما فس معلن این تعبیرش یک تعبیر نیست که نفی شک باشه فس معلن بعد مشکل کار عطه آمده اگه این عطه نبود خیلی آسانتر بود اگر گفت فس معلن باز یک احتمالی بود که مسئله به اصطلاح حجیت خبر واحد باشه بکن اطاعت اصولا در مناسب اجتماعیه پس معلق و عتیقه هر چی که میگه تو بوس بکن انجام بده درک کنی اولا افرو فما ادا اLEY اگر از طرف من خود درک کنی فاعنی وادی و ماکاله که اعْنِی نگو با ماکاله و ماکاله که اعْنِی فاعنی واد تاع فاعنی یا بود بعد از این که کنما فرس محله و میخواد بیا حالا که عثمان بن سعید مطلبی رو گفت کنما من گفتم اطاعت از عثمان بن سعید اطاعت از منه دیوزی که دارش ارخی نیمون اطاعت نه فقط بحث حجیت نیست سما و اطاعت اطاعت از عثمان بن سعید مثل اطاعت از منه انصاف قضیه اگر ما باشیم عبارت باز هم این به وکالت می‌خوره و به نمایندگی می‌خوره. اطلاق نه اطلاقی نداره. اطلاق نداره ببینید میگم اطلاقی نداره بعد یه فعنهو ثقت المعمون یعنی این نماینده مرد اطمینان ماست چون نماینده مرد؟ این از اصفقه از کردیم مجموعه روایات ما این من اول کندم اما شرمش دارم آخر عرض میکنم سه تا روایت ما تا حالا توی سره داشتیم یکی نمانده وکیل، یکی مال سه حت فقاحت یکی هم مسئله حجد خبر سره این یکی شواهدی که آدم می‌بینه. یعنی از این که مثلا راجب پدر از کلام خصوص امام احادیث. الو شما نمیدونیم عمر محمد در زمان امام حادی و امام اوائل امام اسکی چند ساله بوده، اما به هر حال با طرز این بکنیم بالاتر از سن بولور بوده، یک سن معتنابی که ازت امام اسکری ایشون رو وکیل قرار بده. باید مثلا اول برو از زبان امام اسکری باشه، من ندارم اطلاع دارم از ایشان ندارم. به هر حال شواهدی مدلش از امام اسکری که نقل میکنه اینن همینه. العمري و ابنهو سقتان سما اددیالی که انی فانی و اگلیان این سقتان واضح نمانده مورد اشمان و ما آلالکه انی فانی ی بولان و تفریع بر این فس معله هما نکته دوم اطعه هما اطعه هما این اطعه تناسبش بیشتر با مقام وکالت و نمایندگیه نه تناسبش با مجرد نقل خبر حالا که نقل خبرمی شد باید ساموش خب اجازه بدیم حالا این اون شاید اون برابر هست پس اگر ما باشیم انصافا این روایت هم همه بر اون میشه. لیکن اینجا این دیگه پیش نیا چون بعد خود محمد ابن خود عبدالله ابن جعفر از ایشون یک خبرسرغ سوال میکنه از ایشون سوال بپرس تو خود امام زمانو دیدی خودت یعنی شما با این مقامی که داری که ظهور نمیگه قطع خود حضرت بقیعت الله رو دیدی یا مثلا نامه از طرف حضرت در میاد نامه 10 نفر میاد میگه یک نفر میگیره بعد رو میاره میگه بله من خودم دیدم و گردان حضرت مثل اینطور بود بعد میگه خب اسمو رو بگیره. ایشون میگه نه همون علیکم به من نمیشه وضع الان وضع ناکوریه به حساب رو گفته شده که ما مسکره پر کردن فرزندی هم نداشتن هموالشان تقسیم شده الان اگر مسئله ایس مطرح بشه باز دو مرتبه شروع میکنه ازیت و آزاد این مسئله ایس رو شما مطرح نکنید اما این که میگید دیدم بله من خودم دیدم از وقت رو دیدم اما بسید توصیفی ایشون داره که این دوارد یک سنده دیگه هم داره باب تشنیع این حدیث اوله نظر حدیث هم یه جریگان باز داره یعنی با. و وراغرتو مثل هاذا و ام بیاده. این دو مرتبه اومده قراتش رو خب این احتمال نمیده که مراد از وساقت در اینجا وساقت در نقل باشه شما سوال میکنید که تو امام دیدی یعنی سوال اشعون نقل نه اشعون وکالت و نمایندگی دقت نکردید سوالی که ازش میکنه اشون ازش اون نقله تو خود بشهشون خود حضرت تو دیدی که بله من خودم بشهشون خودم بشه می پس ایشون شاید خود خود عبدالله ابن جعبر همگری فه اِنَّهُ سَغَطُ المامون ازش حمیده حتی حجیت در نقله شو میگه سوالی که میکنه اینه یه سوالی از این خصیت نمی کنه. این احتمال هست که به قرینه یه زیل و سوالی که میکنه ازش سوال در باره خبر قدرت هم باشه نه به عنوان نمنده ظاهرا بعیده این باشه این معنا بعیده یعنی بعیده به عنوان حجیت خبر سرر ایشون سوال کرده صحیح این اون اولا باید اینو رو معترف بشین اجازه با باید معترف بشین که وقتی صحبت به در صدر سوال شده از اون برای در نظر بگیرین که ایشون قطعا یعنی عبدالله عبدالله جعفر همیری که داره با ایشان صحبت میکنه وکیل برقیات الله صحبت میکنه اصلا بگیم عنوان در با ایشان صحبت میکنه نه با عنوانی که وکیل امام حادی و اماما ازگ یعنی باید در کلام یه مقدار چیزهای حذف شده حذف این معنی یعنی نه در کلام حذف شده یعنی شما از جلالت شهن اینطور پس شما با خاندان امامت ارتباط مستقیم دارید. سوال اینه مخصوص دو امام بزرگوار راجع به شما این مطلب رو بگن و از طرف دیگر شما فعلا وکیل بقیه مخصوص کلام اینه وکیل بقیت الله هستی یعنی ایشان رو قبول داره که در مطالبی که بر میگرده به امامت و ولایت ایشون کاملا مورد اطمینانه لذا و لذا اصلا قائده شخ... یعنی انسان تحجیم میکنه خب قائده شخصا میکرد که یک کلامی میماز امام مهدی رو چه بیشان میگه نه کلام از دو امام رو گذشته لذا ظاهرن ایشون بخواهد اینه اثبات بکنه که شما دارای ارتباط خاصی با بیت امامت و ولایت هستیم نقصه اینه دو امام بزرگوار این مقام رو برای شما به این درجه اعلا اسوات کردند و چون امر داخل امامت این سؤال رو که میکنه آیا آیات رو بدیدی به ششم خودت به خاطر اون ارتباط با ولایت و امامته نه به خاطر وساقت بسه وساقت نیست خود دقیق رو کنید. و لزا وقتی میگه تو دیدی میگه بله میگه اسم میگه اسم دیگه نه اینا ماشو اون وکالته یعنی من حق ندارم اسم رو این در حدود ولایت من و نمایندگی من ولایت سنجوالیه نمایندگی من وکالت من در حدود وکالت من حق ندارم اسم رو برم اما حق دارم بگم دیده شده این دقت میکنید از این که دو تا سوال میکنه که دیدن حضرت کی اسم کنید. این دو تا و جوابی که اون میده این ناشی از این است که من نماینده هستم من مورد اطمینانم من در خاندان امامت هستم از امام حادی و امام عسکری و بقیه صلاح و مورد وسوقم به عنوان وکیل داره جواب میده نه به عنوان خبر سخه. چرا؟ چون گفت دیدن رو بله دیدن از نه نمیشه نمیشه انچه از بالا من گفتن نمیشه بول توفل از قال رحمه الله بله بعد این ایشون اشاره کرد فقل توفل فبقیت واحده یک نقطه یک سؤال دیگه فقالی حاطبه فقل توفل از اسم مبارکشون قال محرمان علیکم انتسل و انزاله این محرمان علیکم انتسل و انزاله چیه این مقام بکالت به رمائندگیسی هستو میزنه دقتو کنی. <تصفيق> نه به عنوان خبر سقه این مطلب رو میگه یعنی میگه من چون ارتباط در قلیزان در حقه نمیدونه امام این طور پرمون بله دهد داره ده و ولا اقول و هادا من اندی خلیسلی ان احلل و لا احره و علیه السلام فه امر امر سلطان ان ابا محمد علیه السلام من با ولم یو و قسم میراسو و لا اخذه من لاحظته له في جعفره کذاب باشه و هو ذا یا احتمالا هو اشاره به خود جعفر باشه لیس عهد یا هو یعنی یاد حز خود هادی اگر تعرف الیه و اضافه الاسم وقعت طرف فتق الله و انک یعنی یک قیامی از طرف امام به عنوان نماینده امام و وکیل امام به شیعه توسط عبدالله عبدالله جعب می که شما از اسم سؤال نکنید و تقالی الله به هم سکنند هم داشت و وقتی به نمیدنی یا فرصم اتماعی که امامون و ایران در دارم فرمایه امام سالب را در وضایه من کنم منطقه اشتماعی امام که شاید که حکومت دیدن نه که خب امامتی امامت امامت بوده ولایت احلبه لازم به اون حکومت نیسته نه نه در چی؟ لکن در همون چیزی که خود امام باشه فهمی بود یعنی امام میگه من چطور هستم در چه حد و حدودی نه سلطان و خلیفه با عنوان ولی الله قبول میکنه الان از طرف من ایشون میگه پس ما برای این اون که به ذهن ما میاد با شواهد موجود با تعبیراتی مثل پس معله و عطه اوه و وعه یا عته اوه با شواهد موجود با ذیل سوال و جواب معلوم میشه سوالی که ایشون از میکنه با عنوان نماینده حضرت و به عنوان یعنی ایشون نماینده مرد سهی معمول یعنی نماینده ایشون مرد اعتماد به این ایشان نماینده مرد اعتماد هم. از این در نمیاد که ایشون هر خبری رو نرور بکنه ما باید تعبودن ولو ربکی هم به مقام وکالت ایشان و نماینده نداشته باشه لبود بکن بله یه بحث دیگه از اونی که اگر امام معصوم کسی رو توصیه کرد اون خودش این هم توش هست این احلا درجه ها به وصول وصوله آبالاقی مثلا با توصیق ما یک نفر رو از, مثلا از نجاشی مخیم بگیریم این هست این بحث دیگری نیست اما این ناظره به توصیق در نقل روایت نیست ناظره به توصیق در وکالت این کلیه روایاتی بود که ما توش لفظ ثقه داشتیم که ارز کردیم کلیه این روایات مال سه مهبرن یکی وکالت و نواندگی یکی صحت فقاهت و در درست بودن اشتهاب و و یکی هم حجز خبر سقه در نقد مجرد نه که اینها رو ایشون نهارده این تا اول رو آورده که اینا انصافا درکی به بحث حجز خبر سقه ندارد اون ایشون از کردم خوب دکت بکنین ما یه بحثی من اول بحث از کردم این یک واقعیتی بود که بعد از قرآن کریم که هم در باشه سنن پیدا بر توسط همین روایات به رو ما رسید نه به ما به کلیه مزدمی همین سنن توسط این وسایل. ولذا اینا اینها اصلا می ما اگر بنابرای روایات کنار بگیره این سنن چی کار رو این که اجمالا در این روایات موجود پیش ما پیش اهل سنت مقداری از اونها بجرد و برای اثبات سنت کافی اینجای بحث نیست کسی چی چیزی بحث بکنیم اجمالش که ما قبول داریم بحثش این است که به رو عنوان هر کی عنوان داشت ما تعصب پیدا بکنیم شارع به ما یک راه جدیدی رو گفته گفته شما هر کی که سه‌ره بود حتما باید قبول بکنیم میخواد علم براتون پیدا بشونه این بحث رو نداریم این مطلب رو نداریم دیگه حالا این بحث درباره سه‌ره چه خوندید وقتی تموم شد من برای اینکه از بحث درباره سه‌ره شارحم حدیث شماره 4 کتاب رو هم بخونم من حکمی علیه السلام در کتاب تو حول عقول سرد مرسله و جزء حکم منقوله از ذمیر المؤمنین تا اینکه میگه قولوا ما پیللاکن اون چیزی که گفته است بگی و سلم مول ما روی لکن اون چیزی که روایت شده اونو رو قبول بکن تسلیم بشیم حالا این سلم مول ما روی لخان این مثلا حجیه روایت ولا تو کل ولا تکلفوا تکلفی اول به معنای باب تفعل یعنی ولات ولا تکلف ولات تکلف ما لم تکلف فان ما تبعت و علیکم فی ما کسبت ایڤ و لفظت السانتکم و سبغت الیه قایت و غایتکم ره درو شبهه فانه ها وزعت یعنی شما دنبال امور مشتبه نرید اون امور واضحی که گفته شده انجام بدید و چیزی رو هم که در بیان نیامده دنبالش نمی مثلا بگیم خدا و رسول چی ببین ور نکردم میگم نه این حرامه اینا رو نگید اینا رو که بگین نمونه اون اشلات پتنه و شوره و در سر درست این مجموعه یکی دو تا روایت دیگه هم هست که ان الله سکت عن اشیاء لنسد عنها نسیانه فلا تکلفوا هم از این اموری در اینجا هم اینا راضی به موضوع ما نداره این روایات و بعدم روایات بعدی که اینشالله میخونید که یاد غیر سندش چون این از به دو سی جور مرس نرسته شاید اجمالا دوشه قبول کرد به هر حال در این که در زمان امیر المؤمنین به خصوص مجموعه یا روایاتی از اینغربر نرمیشد در سنان حضرت و اینها قابل اعتماد بزن ادهشون جوی بحث نیست این که جوی بحث و از کن بحث مثلا ابن هرز میگه چون ما باید سنت رو حفظ بکنیم لذا راهی که الان ما داریم ما مارواه و سقتون انسقتن انن ان نبی این همون سنت بحثتر این این از کجا میگی این تصاویر رو از کجا میگی اجمالاً باید سنت حفظ بشه درست اما این که مارواه و سقتون انسقتن انن ان نبی این همون سنت رسول اللهه این مشکل کار اینجاست پس این روایت مبارکه اجمالا درسته و صحیح هم هست چایی بخصه نیست لیکن رفتی هم به ما نحنفید نداره